گوینده فرید حامد این داستان زهاک ماردوش شروط بر دوستان عزیز و یاران همراه با اولین قسمت از قصه های شاهنامه حکیم بزرگ توس جناب فردوسی در خدمت شما هستم. این داستان اولین قسمت از داستان زحاکه زحاک ماردوش اسم این قصه قصه زحاک و شیطونه اگر موافقیم با همگوش میکنیم در روزگاران بسیار دور سرزمینی زیبا و سرسبز با چشمه های پر آب و درخت های پربار در همسایگی کشورمون ایران وجود داشت که به اون دشت سواران میگفتن مردم این سرزمین با خوبی و خوشی در کنار هم زندگی میکردند و هیچ غمی نداشتند چرا که جوان مردی مهربان به نام مرداس بر اونها فرمان روایی میکرد مرداس بسیار پاک و خداپرست بود اون به مردم سرزمینش نیکی میکرد و به خاطر ترس از عذاب خداوند عدالت رو همیشه برقرار میکرد و دست به کارهای نادرست نمیزد زندگی مردم در دشت سواران با آرامش سپری میشد و در اون سرزمین شاد و خورم تنها یک دل وجود داشت که همیشه آشفته و پریشون بود اون دل که غمی بزرگ به همراه داشت متعلق به مرداس همون فرمان عادل و با ایمان بود مرداس پسری داشت که اون پسر بوی از انسانیت و پاکی نبرده بود این پسر اسمش زحاک بود اون بسیار پلید و ناپاک بود و از انجام کارهای نادرست لذت می برد. مرداس همیشه به خاطر رفتارهای زشت پسرش زحاک رنج میبرد و هرچی اون نصیحت میکرد. هیچ فایده ای نداشت زحاک برخلاف پدرش بسیار سنگ دل و بیرحم بود و جز ظلم و ستم به مردم بیچاره کار دیگه ای انجام نمیداد. اون به خاطر داشتن ده هزار اسب قدرتمند در بین ایرانی ها به بی و معروف شده بود مردا ثروت بسیاری داشت علاوه بر اسبهای زیاد هزاران هزار شطر و گوسفند به همراه زمینهای زراعتی باغهای پربار غلام و کنیزهای بیشمار همه به اون تعلق داشتند زحاک تمام ثروت پدرش رو از آن خودش میدونست و به دیگران فخر فروشی میکرد اون آرزوی مرگ پدرش رو داشت تا هرچی زودتر مالک تمام دارایی‌های پدرش بشه زها که اونقدر روح ناپاک و خبیسی داشت که رفته رفته با کارهای زشت گناه ها و ظلم و ستم توجه شیطون هیلگر رو به خودش جلب کرد شیطان که دشمن قسم خورده انسان هاست و همیشه در کمین آدمهای نادون و خطاکاره با دیدن رفتارهای ناشایست زحاک برق امیدی در دلش روشن شد و با شادمانی به فکر گمراه کردن زحاک افتاد تا از این طریق بتونه به اهداف پلید خودش برسه روزی از روزها شهیطون خودش و به صورت جوانی خوش قیافه و خوش صحبت در آورد و با ظاهری فریبنده به سوی زحاک رفت زحاک اونو به حضور پرزی رفت و شیتون با شادمانی به او نزدیک شد و با چرب زبونی گفت سرورم من شکارگاه های زیبا و سرسبز رو در بیرون این شهر می شناسم. اگه میل مبارک باشه برای چند روزی به اونجا بریم و کمی خوش بگذرونیم زحاک ابروی بالا انداخت و با بیحوسرگی پیشنهاد شیطون رو رد کرد اما شیطون پلید و هیلگر دست بردار نبود و تا تونست از اون شکارگاه تعریف کرد و با اصرار زیاد بالاخره تونست زحاک رو فریب بده و اون رو با خودش هم راه کنه زحاک و شیتون برای یک شکار ده روزه خود روشون رو آماده کردن و راهی شکارگاه شدند. شیتون که بهترین فرصت رو به دست آورده بود با نرمی و مهربونی خودش را به زحاک نزدیک میکرد و با اظهار دوستی و رفاقت در فکر اجرای نقشه‌های پلید و زشتش بود. چند روزی گذشت و موقعی که شیطون احساس کرد که زحاک دیگه به اون اعتماد کامل پیدا کرده با چرب زبونی شروع به صحبت کرد و گفت ای والا مقام تا کنون کسی را به هوشیاری و ذکاوت شما ندیده بودم شما در شکار، رفتار، گفتار و در تمام کارها سرآمد همگان هستین و نظیر ندارید اما سکوت و بی شما در یک مورد منو خیلی آزار میده زهاک متفکرانه پرسید ای دوست عزیز اون موضوع چیه که تو رو اینقدر پریشون کرده شیطان با چاپلوسی گفت نه نه اصلا فکر مبارک خودتون آشفته نکنید چیز مهمی نیست زهاک بی بیصبرانه منتظر شنیدن صحبت های شیطان بود با عجله پرسید نمیخوای حقیقت رو به من بگی؟ شیطان گفت سرورم سخنان من همیشه در جهت رسیدن شما به اهدافتون بوده و خودتون میدونین که فکری جز خیر و خوبی شما ندارم اما باید به من قول بدید چیزایی رو که الان بهتون میگم با هیچ کس در میون نذارین زهها که صبرش سر اومده بود گفت قول میدم حالا حرفت رو بزن شیطان که متوجه صدای تند تپش قلب زها که بیچاره شده بود لبخندی زد و به آرومی گفت قربانتون گردم شما بی و کم نظیر هستید من در تمام این سرزمین انسانی لایقتر از شما برای فرمان روایی ندیدم اون وقت با بی در گوشه نشستین و حکم رونی و حکومت پدرتون رو تحمل میکنین بی‌تر بدونین که این سرزمین به شما احتیاج داره نه به اون پدر پیر از کار افتاده ای که قدرت فرمانروایی رو از دست داده شما باید به جای پدرتون به تخت سلطنت تکیه بزنین و بدون هیچ ترس و هراسی تاج و تخت رو از اون بگیرید زهاک مه به حرفهای فریبنده و شیرین شیطون شده بود ساکت و آروم مند و شیطون ادامه داد بله سرورم به عقیده من پدرتون دل خوشی از شما نداره و در فکر دادن فرمان روایی به شما نیست من زیاد فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که بهترین راه اینه که پدرتون از میون برداریم مطمئن باشید تا روزی که اون زنده باشه به شما اجازه هیچ کاری رو نمیده زها که یه مدار از حرفهای شیطون ترسیده بود به زحمت آب دهانش رو قرد داد و با صدای لرزون گفت یعنی من من باید پدرم رو شیطان به آرومی در گوشش گفت بله درسته سخن منو بپذیرین تا بزرگو بی همتا بشید تنها شما لیاقت حکمرانی بر این سرزمین بزرگ رو دارین زحاک گیج و سردرگم شده بود به شیتون گفت اما این کاری ناشایسته من از اهده کشتن پدرم بر نمیام اگرم بتونم این کار انجام بدم اون وقت مردم چطور حکم رونی که پدر خودش خودشو کشته قبول خواهند کرد نه نه این راه درستی نیست شیتون که زحاک و دودل و پریشون میدید دوباره با چرب زبونی حرفاشو تکرار کرد و اونقدر در گوش زحاک زمزمه کرد تا بالاخره وسوسه هاش کارگر افتاد و زحاک بازی دست شیطون ایلگر شد شیطان سرمست و خوشحال از اینکه زهاک زحاک به راحتی فریبش و خورده بود اون روز اونو تنها گذاشت و شب هنگام سراغش رفت و گفت سرورم من یه نقشه خیلی خوبی برای از بین بردن پدرتون کشیدم زحاک پرسید چه نخشه داری؟ بگو ببینم شیطان کنار زحاک نشست و با آرومی گفت مرداس پدر شما هر روز به باقی بزرگ و زیبا میره و در اونجا عبادت میکنه ما میتونیم در همون باق با یک اتفاق ساده و کاملا تصادفی مرداس رو بکشیم زحاک گفت چطور؟ چیتون پوس زد و گفت ما درست در همون راهی که پدرتون رفت و آمد میکنه یه چاه عمیق حفر میکنیم و روی اون چاه رو با برگهای بزرگ میپوشونیم پدرتون به محض ورود به باق داخل اون چاه میفته و به قتل میرسه و از اون به بعد شما فرمان فرمانروای مطلق این سرزمین پهناور خواهید شد زهاک سری تکون داد و گفت آفرین تو جوون باهوشی هستی بهتره که همین نقشه رو زودتر اجرا کنیم برای رسیدن به تخت فرمانروایی هر کاری لازم باشه انجام خواهم داد به بدین ترتیب زهاک به همراه شیطون راهی باغ شدند و چاهی عمیق حفر کردن و روش و با برگ و خاک و خاشاک پوشوندن و به شکارگاه بازگشتن صبح روز بعد مثل همیشه مرداس با خدا و مهربون بی خبر از همه جا وارد باغ شد تا به راز و نیاز با خداوند خودش بپردازه اما هنوز چند قدمی نرفته بود که ناگهان احساس کرد زیر پاش خالی شده و در حال سقوط درون یک چاه عمیق و تاریکه داد و فریادهای های مرداس فایدهای نداشت و لحظه ای بعد شیطان و زحاک با شادمانی بر فراز اونچاه ایستاده بودن و جسد غرق در خون مرداس رو نگاه میکردند و موفقیت خودشون را جشن گرفتند بعد از این ماجرا زحاک بر تخت فرمانروایی تکیه زد و حکومت ظلم و ستم آغاز شد زحاک در یک مدت کوتاه تمام اون لحظه های خوب و خوش زندگی مردم و با کارای ناشایستش از اونا گرفت و مردم و به روز سیاه میشوند سربازان اون کاری جز و ازیت مردم بیچاره نداشتند و خودش با سنگ دلی و بیرحمی تمام از دیدن رنج و عذاب لذت می‌برد. روزها همینطور از پی هم میگذشت و شیطان پلید از این که مرحله اول نقشه خودش و با موفقیت به پایان رسونده با شادی بسیار به تماشای ظلم و ستم زحاک دل دلخوش کرده بود. اما این درش کافی نبود و در فکر اجرای نقشه های بعدی بود. روزی از روزها شیطان که فرصت رو برای نزدیک شدن دوباره به زحاک مناسب میدید خودش رو به صورت مردی جوان در آورد و به سوی دربار زحاک رفت. اجازه ورود خواست و پس از شرفیابی به حضور زحاک با تعظیم و عدای احترام گفت سرورم من برای خدمت گذاری به شما وارد قصر شدم آیا به من این افتخار را می دهید که خدمتگزار شما باشم؟ زحاک نگاهی به سرتاپای شیطون کرد و گفت تو چه هنری داری؟ شیطون به نرمی جواب داد قربون من آشپزی ماهر و بیرقیبم بهترین غذاها رو براتون آماده می کنم که تا کنون هیچ کجا نظیرش رو نخورده باشید اگر اجازه بدید برای امتحان دستپخت من؟ قزویم امروز شما رو در کوتا در این زمان آماده کنم و براتون بیارم. زهها کشیفته غذای‌های خوشمزه و خوردن و نوشیدن بود، پیشنهاد شیتون رو قبول کرد و دستور داد که اونو به آشپزخونه قصر راهنمایی کنه. شیطان با خوشحالی تعظیم کرد و به همراه سربازای زههاک به سوی آشپزخونه دربار به راه افتاد. اون روز همه در انتظار رسیدن غذای مخصوص شیطان که به عنوان جوانی آشپز وارد قصر شده بود لحظه شماری میکردن. شیطان با هر ای که میدونست غذایی لذیذ برای زحاک فراهم کرد و اونو با تزعینات زیبا و نوشیدنی های گوارا به حضور زحاک فرستاد. زهاک از خوردن اون غذاها خیلی لذت برده بود شیتون رو به حضور خودش پذیرفت و از اون قدردانی فراون کرد و اون رو به عنوان آشپز مخصوص خودش به درباری ها معرفی کرد از اون روز به بعد شیتون هر روز با خورش های متنوع و کباب های لذیذ و گوشت پرنده های مختلف برای زحاک غذاهای چرب و نرم و خوشمزه تهیه می کرد و بیش از گذشته سعی میکرد خودش رو در نظر زحاک عزیز و گرامی نشون بده یک روز شیطان یک مرغ درشت و یک بره را برای زحاک پخت و روزی دیگه از گوشت گاف غذای خوشمزهی به همراه گلاب و زعفران و عدویه های معطر تحییه کرد و برای زحاک فرستاد زحاک که تا اون روز این همه قضاهای لذیذ نخورده بود رو به شیطون کرد و گفت تو به راستی در کارت بینذیر هستی تو در این مدت زحمات زیادی برای ما کشیده ای و تمام غذاهاتم خوشمزه و بینقصه حالا اگه آرزوی داری بگو تا اون رو برات برآورده کنم شیطون لبخند زیر کانه ای زد و به آهستگی گفت: سرورم خدمت شما تنها آرزوی من بود که من به اون رسیدم اما زحاک بر روی بالون رو و گفت اما چه؟ اگر چیزی از ما میخواهی بگو شیطون با حالتی التماس آمیز به زحاک چشم دوخت و گفت قربان من تنها یک خواهش از شما دارم که امیدوارم را قبول کنیم زحاک گفت خب بگو شیطون ادامه داد خواهش میکنم اجازه بدید من؟ شونه های شما رو ببوسم زحاک نگاهی متفکرانه به شیطون انداخت و لحظهی بد با خنده گفت باشه بیا جلو شونه های ما رو ببوس. شیطون به آرومی قدمی برداشت و به سوی زحاک رفت اما همین که شانه های زحاک رو بوسید ناگهان در برابر چشمه های حیرت زده زحاک و درباری ناپدید شد زحاک با چشمای متعجب به اطرافش نگاه کرد و از سربازا پرسید آشپز مخصوص ما کجا رفت سربازا هم گیج و مبهوت به روی زمین و سقف قصر نگاه کردند و ساکت موندند زحاک قشمگین از جاش بلند شد که ناگهان سوزش عجیبی روی شونه هاش احساس کرد زحاک آنچنان از درد و سوزش شونه به خودش میپیچید که نتونست از جاش تکونی بخوره درباریها با دیدن چهره دردمند زحاک به سوی اون دویدن و اما چیز بسیار وحشتناک و عجیبی اونا رو سر جاشون میخکوب کرد زحاک با چهره در هم کشیده و دردمند به شونهاش نگاه کرد و دید از جایی که اون شیطان یا اون مرد جوان بوسه زده بود مار زشت و سیاه سر براوردن از ترس سر نگهبانا فریاد زد و گفت چرا معطل هستین؟ با شمشیرهاتون سر این موجودات زشت رو ببرید و اونها رو از من دور کنید نگهبان ها با سرعت با شمشیر به جون مارها افتادند اما هیچ فایده ای نداشت هر ماری که از روی شونه زحاک بریده میشد و به روی زمین میافتاد، بجاش یه مار دیگه از شونه اون سرس بیرون می آورد زحاک نفس نفس زنون روی تخت نشسته بود و منتظر از بین رفتن مارها بود اما دید که هیچ فایده ای نداره فریاد زد به دنبال حکیم برید، طبیبان مخصوص رو جمع کنید، چرا بیکار نشستین؟ در یک مدت کوتاه، همه طبیبای معروف کشور در قصر حاضر شدند و هیچ کدوم درمان این درد عجیب زهاک رو پیدا نکردند اما بشنوید که شیطان حیلگر که با شادمانی داشت این منظره رو میدید و رنج درد زهاک رو مشاهده میکرد تصمیم گرفت که نقشه بعدیش رو عملی کنه و این بار به حیبت و شکل یک طبیب ماهر و کارازموده به سراغ زحاق رفت تا مرحله بعدی نقشه شوم خودش رو به اجرا بذاره چند لحظه بعد وقتی که همه پزشکان از درمان این درد آجز مونده بودند شیطان دوباره در لباس پزشکی حاضق به دربار زحاک اومد و گفت سرورم اگر به دنبال آرامش هستید باید خوراکی از مغز آدمی زاد هر روز به این مارها بدید این تنها دوای درد شماست. هست که به چیزی جز رهایی از چنگ اون مارهای وحشتناک فکر نمیکرد، حرف شیطان قبول کرد و دستور داد تا هر روز دو جوان رو بکشند و از مغز اونها خوراکی تهیه کنند تا به مارها بدند و اونها آروم بشن سربازان جلاد زهاک هم اطاعت کردند و از اون روز به بعد هر روز دو تا جوان رو از بین مردم به زور و تهدید به قتل می رسوندن مغز سر اونها رو به آشبازخونه قصر می تا خوراکی که مناسب مارها باشه آماده کنند و به مارهای زهاک بدن بدین ترتیب مردمی که از ظلم و ستم زحاک خسته و آزرده بودند با کارهای ناشایست و قتل جووناشون که هر روز باید برای خوراک مارهای دوش زه های کشته می منتظر فرصتی برای قیام علیه اون بودن خب وزیزان من بخش اول این داستان به پایان رسید امیدوارم که از شنیدن اون لذت برده باشید و به این مسئله فکر کنید که چه؟ پندی میشه از این داستان گرفت و این داستان چه پیامی برامون داره تا برنامه بعد که با ادامه یه و ها که ماردوش در خدمتتون هستم رو به خدای مهربان میسپارم شاد و پیروز و سربلند باشید.